بسم الله الرحمن الرحيم الأمر بحث أمر شماريس سدوسي فنجم كتاب تعريفه وهو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الاستعلاء ويتحقق طلب الفعل بإفعاله أو صيغة المضارع المقترن بلام الأمر أو بالجمل الخبریت اللتی یقصدو بها الامرو للاخبار بله خب شماره صد تعریف امر تعریف میفرماید لفظی است که وضع شده است برای طلب کردن فعل برای طلب کردن کار بر سبیل استعلا سبیل استعلا دیگه چه است؟ یعنی اون امر کننده برتر باشه از اونی که امرش میکنه. و اگر نه اگر در سطح هم باشن بهش میگن التماس آ اگر دو تا هم سطح از هم دیگه چیزی رو طلب بکنن انجام کار رو بهش میگن چی التماس اگر طلب کننده تر باشه از اونی که امر میشه، بهش میگن دعا اگر انسانی بگه پروردگفر رب ربغ بهش میگن دعا دیگه بهش عمر نبید. نه میگن پس میگه لفظی است که وضع شده برای طلب فعل به سبیل استعلا به سبیل چی استعلا رو فهمیدید؟ باله یعنی اون آمر باله و محقق میشه طلب فعل به وسیله افعال یعنی منظور فعل عمر با فعل امر <تصفيق> که خب در سلاسی مجرد بر وزن افعل هست دیگه در سلاسی مزید دیگه تفصیلات داره مثلا از باب تفعیل فعل و فعل, و فعل و فعل امرش میشه فعل کرم منظورش اینه که سیغه امر باشه یا سیغه مزارعی باشه که لام امر داره که همون در میزان شما با امر غایب اسمشو خوندید دیگه نه منده ده لیغفر. پس میگه امر در عربی یا به افعال هست موسیقه امر حاضر که خب تفصیلات شده در کتاب های نهوی سرفی خوندید یا مزاری لام امر داشته باشد یا به وسیله جمله خبریهی که منظور از آن امر هست نخبر در عربی خیلی از جمله های خبری منظورشون امر و طلب هست منظور خود خبر نیست مثال میاره برای حرس نمونش که قولی تعالی اقیم صلاة لدولوک شمسی نماز را دار با زوال خورشید خب اینجا اقیم فعل امر ما هست فعل چیه ما هست؟ امر ما هست که با از باب افعال هست در ادامه مثال بعدی فمن شهیدم ایم کمش شهره مثالی آورده برای اون سیغه مزاری که روش لام امر اومده چی اومده؟ لامر. فلیاسم هو لیاسم لیاسم هر کس از شما ماه را دریافت رمضان را پس آن را روزه بگیرد این اینجا امر ما به وسیله چی هست؟ امر حاضر دیگه نیست فعل مزاری هست که روش چی اومده؟ باید. لام امر یا همون امر غائب یا همون امر؟ و مثال مثال سفومی جمله خبر هست منتها تا به معنای امر هست والوالدات الوالدات اولادهن حولینی کاملین مادران ش... ببینید معنی خبریش به این شکل مادران شیر میدهند فرزندانشان را دو سال کامل ولی یردعنه که فعل مزاره هست به معنی امره به معنی طلب هست به این شکل معنی میشه که مادران شیر بدهند فرزندانشان را دو سال کامل آمد. پس خیلی از جملات خبریه منظور از اونها همون امر هست همون چه هست؟ آمد. خب اومد امر رو تعریف کرد و گفت که در زبان عربی چی هایی دلالت بر امر میکنند خود امر حاضر فعل مزاره ای که آئلام امر روش آمده باشد و اون جملات خبریهی که به معنای امر هستند حالا که این مسئله رو توضیح داد میگه موجب الامر امر چی چیزی رو ایجاب میکند شما انسان به عنوان مجتهد یا محقق موقعی که میخواد نصوص شرعی رو بررسی کند اونجا خیلی از سیغا سیغا چی هستند امر هستند این سیغه امر چی چیزی رو ایجاب میکند میگه سیغت الامری تردو لمعان معانین منها من هل والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وغير ذلك من المعاني ولورودها في المعاني الكثيرة اختلف العلماء في المعنى الذي وضعت له صيغة الأمر عند تجردها من القرائن الدالة على المعنى المراد بفرمايتك الصيغة يا وارد ظارت شدأس براي معنها الزيادة سیغه امر وارد شده است برای معانی زیادی اون معانی چه هستند؟ وجوب یکی از معانی های امر واجب بودنه نه. موقعی که به شما میگن بخور پس یکی از معانی بخور واجب بودنه یعنی باید این کار چکار بکنی نه. پس یکی از معانیش وجوبه دیگه چه هست؟ نه. مندوب مندوب یعنی موقعی که امر اومده به مین معنای که بهتر این کار انجام بدی دیگه چه هست اباحه هست مباح بودن دیگه چه هست تهدید، با حسیل سیغه امر تهدید میشه ارشاد بله راهنمایی کردن و معانی دیگه ای میگه به خاطر همین که سیغه امر دارای معانی زیاد هست از اون جایی که سیغه امر دارای معانی زیاد هست علما اختلاف کردهاند در اون معنایی که سیغه امر براش بست شده زمانی که قرینه نداشته باشه که بر کدوم یکی از این معانی دلالت میکنه اینجا با هم اختلاف کردند که خب معنیش اینجا چی هست کدم معنا رو دارد روی این چیز اختلاف کردند زمانی که قرینه نواشد کدوم معنی معنی رو میرسونه والاتفاق حاصل على ان صيغه الامر ليست حقیقتاً في جميع هذه المعاني فهی مجاز في غير الوجوب والندب والاباحه فالاختلاف اذا في هذه المعاني ثلاثه خوب دقت داشته باشین مسئله مهمی هست میگه ولی روی یه چیز اتفاق دارند. بفردا خب نه نه من باور کنم خب بی بیان. خب دد پس میگه به خاطر این که از اون جایی که فعل امر معانی زیادی داره و زمانی که هم قرینه همراهش نباشه که بر کدوم یکی از این معانی دلالت میکنه اینجا علما اختلاف کردند که امر روی کدومی که از این معانی دلالت میکنه ولی روی یک چیزی اتفاق دارند اتفاقشون روی این هست که سیغه امر در امر و در وجوب و مستحب و اباحه معنایش حقیقی هست یعنی به شکل حقیقت بر این سه چیز دلالت میکنه ولی در معانای دیگه به شکل مجازی کار رفت پس این هم اختلاف یک کمی محدودتر میکنه میگه علما از اون جایی که سیغه امر معانی زیادی داره با هم اختلاف کردند که زمانی که جای امری اومد و قرینه هم نبود که بر کدوم یکی از این معانی دلالت میکنه اختلاف کردند که اینجا چه معنایی داره؟ ولی روی یه چیز اختل... اتفاق دارند اتفاقشون روی این هست که سیغه امر در تمام این معناهی که ذکر شد حقیقی نیست بلکه در واجب بودن و مستحب و عباحه معنیش حقیقی هست به معانی دیگر مجازن کار رفته روی معانی دیگه چی کار رفته؟ مجازن پس در این صورت اختلاف روی چند معنا شد؟ ستا دیگه نه؟ علماء اختلاف دارند که آیا زمانی که امر اومد قرینه نداشت آیا وجوب رسونه؟ یا مستحب امیرسونه یا مبهرون اختلاف دارن حالا ببینیم که نزریات سنو میاره قال بعض الالما ان الامر مشترک بین هذه المعانه الثلاثه بالاشتراک اللفظیه فلا يتبینو المعنى المراد إلا بمرجحن بعضی از علماء گفتن امر مشترک هست بین این سه معنا اشتراک لفظی داره و اون معنای که مراد هست از امر واضح نمیشه مگر این که یک مرجهی باشه مگر اینکه که یک قرائینی چیزایی باشه و قال آخرون پس گروهی گفتند که مشترک بین هر سه معنای مشترک بین چیه؟ و قال آخرون گروهی گفتند که الامر مشترکون بین الایجاب و ندب فقط اشتراک لفظیان ولا بد من مرجح للتعيين واحد من هوا جروه تجار قفت أنك أمر مشترك بين إيجاب ونادم فقط اشتراك لفظي وبعدك مرجحي باشكه بيعد تعين بكونك كدوم معناهش أزندوتا مراد هست وقال آخرون ومنهم الغزالي فلا حكم للأمر أصلاً بدون القرينة إلا التوقف حتى يتجلى المطلوب بالأمر قبدي قدر شاشيد گروهی دیگر گفتند امام غزالی جسربین گروه سومه اونا گفتند که امر بدون قرینه اصلا حکمی نداره جز توقف کردن جس تا زمانی که اون مطلوب مشخص بشه و اما عامه العلماء فقالوا ان الامر وضع في الاصل للدلالة على معنى واحد من هذه المعاني الثلاثه فدلالته على هذا المعنى دلالة حقيقية وفيما عدا هذا المعنى الواحد مجاز عموم العلماء گفتند که امر در اصل واز شود است که دلالت فقط بريكي یکی از این سه معنا که که دلالت فقط بريكي یکی از این سه تا معنا یعنی فقط بر یکی از اینا چیکار بکنه دلالت بکند و دلالتش بر اون معنا دلالت حقیقی هست اما بر بقیه چه هست؟ مجاز هست خب و اختلف في هذا المعنى الواحد حالا که گفتن بر یک معنا دلالت میکنه خودشون دوباره اختلاف کردند که اون یک معنی چی هست؟ کدوم یک یز اینا هست ها؟ آیا وجوبه یا نه؟ پس اختلاف کردند. خودشون یعنی این گروه آخری خودشون با هم دیگه اختلاف کردند که اون معناه واحد کدوم یکی هز از این فقال الجمهور انه الوجوب جمهور این گروه گفتند که امر دلالت بر وجوب بیکند ای ان الامر المطلق وضع دلالت علا الوجوب فهو حقیقت فیه مجاز فی غیره جمهور گفتند که امر مطلق اون امری که قرینه همراهش نباشه. باشه واض شده برای دلالت کردن بر وجوب پس در دلالت کردن بر وجوب حقیقی هست و در معانی دیگر مجاز هست فلا يصارو الى غیر الوجوب إلا بقرینت فإن كانت القرينة تدل على الندب كان موجب الامر الندب وإن كان القرينة دالتا الى الاباحة كان موجب الامر الإباحة وهكذا. ان این گروه که بر وجوب دلالت میکنه و معناشو از وجوب به معانی دیگر نمیبریم مگر اینکه قرینه باشه مگر اینکه چی باشه اگر قرینه ای بود که دلالت بر این میکرد که این امر دلالت بر به معنای مستحب هست اون موقع به معنای مستحب هست و اگر قرینه دلالت بر این میکرد که اینجا امر بر اباحه دلالت میکنه اون موقع موجب اون امر چی است اباحه است و اینطوری و هذا القول هو الصحيح وعلى أساسه يجب أن تفهم النصوص و تستنبط الأحكام ميجي همين تستنبط أن أمدي أن تفهم النصوص و أن تستنبط الأحكام ميجي همين قول قول آخري قول الصحيح هست وبر أساسه من قول آخري نصوص فهمي ده شواند وأحكام استنبط شواند. همین قولی که گفت امر دلالت بر وجوب میکند مگر اینکه قرینه ای بیاد و از واجب بودن صرفش کند به مستحب یا به مباح بودن بله پس موجب امر توضیح داد که چه چی چیزی رو ایجاب میکنه الامر 137 الامر بعد نه یک مسئله دیگه ای وجود داره امر بعد از نه هست عمر بعد از چی مثلا شخصی رو میگند ناخر بعد بش میگن بخور اینجا باز هم آیه امر دلالت بر وجوب میکنه یا نه اینجا داستان متفاوته بله ذهب الحنابلة وهو قول مالك و اصحابه و ظاهر قول الشافعي الى انه يدل على الاباحه ولا شيء اكثر من الاباحه مستدلين بانه ورد هكذا في نصوص كثيرة مثل قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فقد ورد هذا الأمر بعد تحريم الاستياد بقوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم والاتفاق على أن الأمر بالاستياد يدل على الإباحة فقط ولا يدل على الوجوب خب دي قداش تبعشيد بيجي وقول أزمان مالك وأصحابش وظاهر قول أمام شافئين هسك أمر دلالته بر مباحبوداً ميكوني بعد الزنحي دلالته بر شميكوني؟ باله. خوب اینا از چه چیزی استدلال کردند اینا استدلال میکنند که در نصوص بسیار زیادی چونیل وارد شده است در نصوص بسیار زیادی چونیل که یعنی دلالت مباح بودن میکنه بعد از نه مانند این آیه کریمه و اذا حللت الفستادو و زمانی که از احرام درامدید شکار بکنید خب اینجا فستادو فعل امره آیا شکار واجبه؟ میگیم نه میگیم چرا؟ میگیم چون اینجا بعد از نه این امر اومده نه چی بود؟ نه در آیه دیگه اومده است زمانی که شما در احرام هستید سید برای شما حلال نیست خب اون نه اومده بعد از اون نه اومده که زمانی که از احرام در اومده چکار کنید؟ سید کنید پس از اون جایی که این امر بعد از نه اومده دلالت چی بر دلالت چی میکنه بر مباح بودن سید دلالت بر چی بعد میگه اتفاق وجود دارد که امر به کردن به شکار کردن فقط دلالت بر مباح بودن میکنه و دلالت بر وجوب پس این گروه نظریه این بود و ذهب آخرون و منهم عامه الحنفیه علی ان الامر بعد الحظر والتحریمی یفید الوجوبه کما لو الامرو الامر این دون سبق تحریمی گروهی دیگر که عبوم حنفیه از همین ها هستن میگند که امر بعد از حاضر بعد از تحریم باز هم وجوب رو میرسونه اینا میگند که بعد از حاضر و تحریم بعد از حرام بودن بعد از ممنوع بودن باز هم چی رو میرسونه؟ وجوب رو همان طوری که اگر قبلش اصلا تحريمي ونمي وماد امر دلالة بر وجوب ميكار الآن هم كي بعد از ناحي بعد از تحريم وماده بازم دلالة بار چي ميكون ات بار وجوب واستدل اصحاب هذا القول بان الأدلة الدالة بان الادلة الدالة على الوجوب لا تفرق بين امر ورد بعد التحريم وبين امر غير مسبوق بالتحريمي اینا استدلال کردند که ادلی که دلالت بار وجوب میکنند فرق قائل نیستند بین اون امری که بعد استحرام بیاد و بین اون امری که قبل اشتحرام نیو مداز اینا انجوری بیگند خوب وذهب بعض الحنابلتی و هو اختيار الكمال ابن الهمام من الحنفیه ان العمر بعد الحضر يرفع الحضره ويعيد حال الفعل المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان مباحاً كان مباحاً وإن كان واجباً أو مستحباً كان كذلك بازي أسحن بليها وكما الابن همام حنفي بارين باوراند كأمر بعد الحضر فقد أن حضر والحرمة قابل ربار بيداره ها؟ و فعل معمور بهی رو باز میگردونه به ما قبل حضر به ما قبل چی؟ هر حکمی رو که قبلا داشته همون حکم رو میگیره اگر قبلا مباح بوده مباح میشه مستحب بوده مستحب میشه ها؟ اینجا مثلا میگن چون سید قبلا مباح بوده بعد در احرام حرام شده امر بعدی که اومده اون حرام بودن و فقط برداشته دیگه سید برگشته به اون حکم قبلیش که مباه بوده متوجه شدید؟ خب ولی مسئله ای که خیلی زیبا بود این هست که علمای قدیم مقلد متأثر مثلا شما یکی از یک نظریه یه دیگه فقه که کن؟ انتخاب کنون چون اهل استدلال بوده عالی اهلتی متأسفانه این, این؟ متاسفانه ای جاهلی الان های جاهلی القرنجي وترس، بل خوب خضار الشوك لاشن ويبدو أن، ويبدو لي أن القول الأخير أدنى للقبول، ويبدو عليه استقراء النصوص التي وردت فيها الأوامر وبعد النواهي. دكتور زيدان رحمة الله له ميجيكي، أنشكي برأي من ظاهره، أشكاره منزول قول راجه، آخ قول آخره نزدك ترى للقبوله. يعني همين كه. این امری که بعد از نهمیات فقط اون نه یا اون تحرمت رو برمیداره و حکم به کجاش برمیگرده به با قبلش هر حکمی رو که داشته اون مسئله قبلن همون حکم رو داره میگه بررسی و استقرار نصوص همین چیز بر همین چیز دلالت میکنند اما دلالت و الامری اسوالیت سوالیت که بی جس كرتت إذاً خيلي جالي دلالة الأمر على التكراري دلالة الأمر المختار من الأقوال في هذا السد أن الأمر لا يدل على التكرار لأن صيغة الأمر لا تدل لا تدل على إلا على مطلق طلب الفعل من غير إشعار بوحدة أو تكرار إذ هي موضوعة لهذا المعنى فتكرار المأمور به أو إيقائه مرة واحدة خارج أن ما هي تسيغة الأمر ولا دلالة فيها على واحد من هو حسب الوضع خب دي قدراشة باشيد ميكي آي أمرك شد مثلا نماز بخون ها؟ يا بخور يا بينشين آي إن أمر دلالة بر تكرار بيكور كهميشي كاربات تكرار بشي والمأمور به ميشي تكرار بشي يعني امر دلالت بر تکرار نمی کند این رو جواب میده. میگه آنچه که از میان اقوالی که در این رابطه اومدن مختار هست چون در این رابطه اختلاف هست نه میگه قول مختار این هست که امر دلالت بر تکرار نمی کند پس قول مختار کدون هست همین هست که منظور از مختار برگزیده. ارجح امر دلالت بر تکرار نمیکند زیرا سیغه امر دلالت نمیکند مگر بر مطلق طلب فعل مگر بر مطلقاً بر طلب فقط دلالت میکنه بدون این که درش معنای یک بار انجام دادن وجود داشته باشد یا تکرار اصلا چیزی از این معنا درش وجود فقط دلالت بر طلب فعل میکنه زیرا بر همین معنا اصلا وضع شده بر معنای طلب فعل وضع شده اما این که اون امر تکرار بشه یا یک مرتبه انجام بگیره این خارج از ماهیت سیغه امر هست ماهیت امر فقط این میرسونه که اون کار طلب شده اون کار انجام بگیره تکرارش یا عدم تکرارش در ماهیت امر وجود ندارد بر حسب وضعش خب ولكن لما كان تحصيل المأمور به لا يمكن باقل من مره واحده صارت المره الواحده ضروريه للاتيان بالمامور به لا أن الصيغه بذاتها تدل عليها منتهى یک نقطه‌ای رو ذکر میکنه میگه ولی از جای که حاصل کردن معمور بهی ممکن نیست جزء این که حداقل یک بار انجام بگیرد بجي در نتیجه انجامش یک مرتبه جز ضرورت هست جز چه هست؟ ضرورت انجامش هست اما این یک بار انجام دادنش به خاطر این نیست که خود اون امر دلالت چیش میکنه این که آیه یک بار باشه یا بیشتر بلکه به خاطر اینه که حداقل حد انجام گرفتن یک مرتبه هست دیگه نه؟ خوب پس سیغه امر در ذات و ده دلالت بر یک باره کن نبگیشتر بل ازا جایی که برای امری بودن این امر حداقل یک مرتبه نیاز هست، ضرورتاً پس یکبار چیه بوده؟ واجب بوده. و الا هذف الأمر المطلق يدلل على مجرد طلب إيقاف الفعل المعمور به، ويكفي للامتثال إيقاه مرّة واحدة، إلا إذا اقترن به ما يدلل على إرادة التكرار كأن يألق الأمر على شرط أو على صفة، اعتبرهم الشارع سبباً للمعمور به. دقت داشته باشید میگه بر این اساس امریک مطلق اومده است یعنی همراه قرینه باش نیست بر این اساس امریک مطلق اومده است دلالت فقط بر طلب کار میکنه فقط دلالت بر چی میکنه که اون کار انجام بگیره و برای فرمان برداری این امر کافی هست که یک مرتبه چی بشه انجام بگیرد مگر زمانی که مگر زمانی که اون فعل امر همراه با چیزی باشه که ازش تکرار ثابت بشه ازش چی ثابت بشه؟ تکرار مانند این که اون امر معلق به یک شرطی یا به یک صفتی باشه معلق به یک شرطی باشه متوقف به یک شرطی باشه یا متوقف بر یک چی باشه؟ صفتی باشه که اون شرط و اون صفتو شارع سببی برای اون معمور بهی قرار دادن مانند چی؟ حالا توضیحش میده مثل تعالیق الامری بالوضوء على ارادت السلات فتکرار الوضوء مستندن الى تکرار سببهی و ارادت لا الى الامری خوب دقت کنید میگه مانند معلق بودن امر به وضوء بر اراده نماز بر اراده چی؟ نماز خوب برای وضوء امر اومده ما وضوع رو هم همیشه تکرار میکنیم آیا به خاطر اینکه امر اومده تکرارش میکنیم یا نه از اونجایی که شریعت این امر وضو رو معلق به اراده نماز کرده گفته هرگاه خواستید نماز بخونید چیکار کنید وضو میگیرید هرگاه خاصید نماز بخونید چیکار کنید؟, کنید پس ما اگر وضوع رو تکرار میکنیم به خاطر اینه که وضوع معلق به امر دیگر هست نه که سبب پس از اون زابیه ما داریم ووزور چکار میکنیم؟ ها؟ پس مستند تکرار وضوع آیا امر هست یا نه من سببش که اراده نمازه؟ بله. والامر الامر الجلد ایقاع الجلد الازانی الى تحقق اللتیه و هی الزنا ف كل متكرر زنت تكر الجددو فتكرار هنا مبنیون على تكرار اللة ال الجدی لا إلى المر بالجل وإضا وإذا وإذا هذا القل قلت اقال أاخرى من المر اقتزیت تکرار خوبب دقت کنید آخرین مثال رو میاره. میگه همچنین امر امر به واقع کردن جلد تازیانه امریک که اومده است زانی تازیانه زده شود. مستندش چه هست همون علتشه که زنا هست. همون علتشه که چیه؟ میگه هر گازنا تکرار شد پس اون تازیان زدن هم چه بشه؟ تکرار بشه. ولی اینجا تکرار کردنش مستندش اون امره نیست، بلکه مستندش اون تکرار چیه؟ علتشه که همون زنا باشه بالا. ناخذ نخود امر، چیه میگه در مقابل این قول اقوال دیگهی هم وارد شده است از جمله این که امر چی رو اختضای میکنه؟ تکرار رو پس قول راجحو گفت که امر اختضای تکرار نمیکنه در آخر هم قول دیگهی رو آورد که گروهی دیگر گفتند که امر اختضای چی میکند؟ تکرار